اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نشاء العالمين يا نويب قلتي لربك وسلوبي وركعين عوتيين ذلك من آباء الغيب نوح إليك. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلانهم أيهم يدفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون خارج بالله من الشيطان الرجيم الشيطان الرحمن الرحيم نفي أولوهية الزمأيام عليها السلام الله سبحانه وتعالی مریم که نظر الهی بود و در عبادتگاهی از عبادتگاه های بیت المقدس به عبادت خدای کریم مشغول بود و الله تعالی بدون مشکل بشه بهشان فرزندی عنایت کرد بشیار برومن اکنون مسیحی ها نشوت مریم و فرزندش اعتقاد الوهیت را و اعتقاد معبودیت را داشتند، یعنی حضرت مریم را هم عبادت می پرستش فرستش و حضرت ازکال صلاة والسلام را هم عبادت جانی و مالی و زبانی می کردن اللہ سبحانه و تعالی از این ازکالت الملائکن نفی قلوزیت را بیان میکند کند مریم هم مثل بندگان دیگر خدا و معمور عبادت اللہ بود بله فزیلت هایی که خدا به مریم داده بودینا این آیات رب العالمین میدن یاد کن اون لحظره که پرشتغان خطاب کردن به مریم که یا مریم فضائل و فرائز مریم این فضائلن بعد فرائز مریمین ای مریم یعنی الله تعالی میگه مریم مثل بندگان دیگر الهی مورد عنایت هم بود و بنده خدا و فرشتگشوننده الله بود ای مریم ان الله اصطفاکی الله تعالی تو را برگزیده اول در طفلی مقبول گردانی و طهرکی و قدوسات که شما را پاک کرده تمام سماوین چیزهای بعد کبائت وخدا شمارا و اشتفاقی و, شمارا و, بعد شمارا و خدا شما را برگزیده بعد از گلوغت یعنی که بیان اولش از تعالی شما را برگزید در کبی مخبول کرده و اشتفاقی و الله سبحانه و تعالی شما را برگزید بعد از گلوغت شما برگزیده خدا حسیده الانساء العالمی برزنان جهانیان زمانی که تمام زنانی که در زمان شما بودن تو بر همه برگوزیده هشتی و بهتری و انتخاب شده ای حالان پرایز مریم را بیان کرد یا مریم اکموتی مریم مصر بندگان دیگر تو عبادت کن لرب خاص برای پروردگار تنها و تنها برای رب عبادت کن و نوع عظیم عبادت و جودی خاص برای خدا سجد کن و ای خاص برای خدا رکو کن ما الرافعی با با که رکو می کنند تو برای خدا رکو کن رکویت فقط برای خدا و سجدتا فقط برای خدا نه تا کسی دیگر را عبادت نکنید که این معرکین معنیش که نماز و نماز خانند در معبد بخوان این ملازمه محراب عبادت خدایش بود که وغیت المکدس وقت لنید شما با اون عبادت کنندگان عبادت کنید با رکوب کنندگان رکوب کنید با شجد کنندگان خجد کنید رکوب و سجده شما با رکوب کنندگان خجد کنندگان یعنی اللہ تعالی میگه مریم که معبود نبود مریم مسجود نبود مریم خودش ساجده و راکه و قانطه رب العالمین اکنون این داستان مریم داستان حضرت زکریه و ایسا که بیان بندگی این بندگان را میکند هم دلیل برای رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم هستند پیامبر صلی الله علیه و سلام وقتی در زندگی خودش कि هیچ استاد و بدرستان و دانشگاهی درش نه خوانده و تاریخ امم گذشته را بیان میکند بدون خواندن این تاریخ حضرت مریم را تاریخ حضرت زکریا را و یحیی خود به خود این دلیل نبوغت پیغمبر است که پیغمبر علیه السلام از عالم غیر از وحی الهی حرفا زند و اثرت خودش هیچ بشر ناخوانده تاریخ بشر را بلا ذالک من انبار الغیم این شیره که برای مریم بیان شد و زکریہ علیہ السلام بیان شد این شیره و این اخبار و کسس از اخبار غیب هستن ای پیغمبر صلی اللہ اخباری که غیب بودن لی شما نوحیه الیک ما این حرد جان شما این اخبار امم بودشترا وحی نکنین و شما نبودی ای پیغمبر حاضر نذر این بنی اسرائیل کے هنگام برای کفالت حضرت مریم باهم مناسع داشتند اختلاف داشتند و نتیجه بقرع کشید کشید مسیلی آنها و قرآن زکریہ درامت تکفل بکنت شما کرده حضور نداشتی این هم دلیلی هست که شما نبی برحق هستید و از عالم جیب و وحی الهی حرف نیشنید وما کنتو و, و نبودی شما حاضرن ایلدهیم حاضر نبودید نظرین بنی اسرائیل انگامی که انداختا کلمهار در آب که کدام یکی از آن آب شفیل مریم می شود شما انجا حضور نداشتی افیران همه اخبار غیران من برای شما می نه شما حضور داشتید و نه تورات و انجیل خانده اید و نه زبور خانده و نه تاریخ اومم که مکتوب شده شما که هیچی نه خانده از عالم غیب هستن و دلیل رسالت شما و نبودید شما نزد آنها ادی ایدی اختصیمون وقت خصومت میکردن قبل از قرآن قبل از قرآن کشی آنها درگیر بودن هر میگفت می گفت من مریم را تکفل میکنم کنم و تر الان جواب سبحان نسبت به حضرت عیسی علیه صلات او نمی تواند معبود قرار بگیره که نفارا او را معبود قرار داده بودند بلکه او خودش مخلوقه و خلق شده هست و مخلوق چطور می تواند معبود بشه معبود خالق هست یاد کنون لحظه که پرشتغان گفتن ای مریم الله تعالی شما را بشارت میدهد به یک کلمه‌ای ای که از خدا هست کلمه‌ای ای که مخلوق خدا هست این کلمه را الله تعالی به صورت حضرت مریم به صورت حضرت ایسا در بطن مریم کرد. کلمه کن اثر بذاشد کلمه ای که از جانب خدا هست اسم آن کلمت الله المسیح هست مثی دو معده دارد از مسیح هست یا از صحیح هستمی نزایده از مسیح باشد چون حضرت ایشا بر کورها و بر ابرشها وقتی دست مبارک را می مالید این ها میشدن به ازن الله به خاطر اون را می گفتم مسیح مسکننده به هر مریضی یا حتی به مادر زادی وقتی به نام خودش من الله می کرد و نام خدا را میگه تو دست میمالی بینا می شد این خاطر در مسیح میگن یا از ماده خیهتش می صحت به معنی گردش حضرت مسیح در زندگی خانه و قاشانهی نداشت همه ایش به بله این خاطر که همه در سیاحت بود و دعوت و تبلیغ بود ولیزا حضرت ایسا علیه السلام را محی بین خاطر گفتن خوب محی ایسا نام مبارک اشخاص مسیح نام اشخاص ابن مریم از ابن الله نیز نوذ بالله ولد الزناه نیز فقط اللہ تعالی ایسا را اذیب سمت خلق کرد اکثر سر مخلوقات و همه مخلوقات از دو سن که ذکر و انسا باشن خلق شدن و ایسا علیه سلام فقط از مادر حدا شده حدای نگرد ایسا که ابن مریم است این تردید یهودت لا نفیه حضرت ایسا علیه صلی و را ولد و می گفتن و همین تردید نسارا است، ایسا را یکتر جایمی گفتر خدا بسورة ایسا ظاهر شده اللہ راست لیکن بسورة مسیح اینا اللہ هو المسیح ابن مریم و بعد ذا گفتر نا ای ابن اللہ راست اللہ ملینا ای ابن من یا مسیح ان زنی هاست و اللہ تعالی فاکست اس ان کی پر انتخاب بکنه اللہ تعالی شما رئی مریم بشارت لیه کلمهی که حکم خلکتش از خدا هر که نام اون کلمه المسیح ایسا ابن مریم وجیهم در حالی که بشیار داب جاحت است در دنیا و آخرت سلسط ادینی نزد خدا داره در دنیا و آخرت بوجه, بوجه مکبولیت شفاعت و دیگه بخاطر نبوهات الله تعالی او را عزت و در دنیا و آخرت دنیت کرده و از مغربان الله سبحانه و تعالی هست علاوه اصطفات خارجیه این از مغربان الانیت هست و خبت وجیه دنیا و الاخره و من المقربین در دنیا وجیه در آخرت وجیه و از مغربان بارگاهش هست و چهارو میبکت و یکلم الناس و کلام میکند با اینستانها فیلمهدی هندان کی درگه واره روز ولادت کلام کرد و کهلان و هندانی که او فیر می شود این کهلان اشاره است کہ حضرت ایساد بسین کهولت نرسی جو از چلو بالا کهولت است و حضرت ایسا علیہ السلام به سن کهولت نرسیده بود که خدا در آسمانش بود اشاره یعنی حضرت ایسا به دنیا برمی گردن از آسمان روایات در این حد قوید حضرت ایسا علیہ السلام برمی گردن. و به رسالت فیغمبر علیه السلام و به قرآن متمستد میشن شن و انسانها را دعوت می دن پس این اشاره ی به که حولت حضرت ایسا ورنس در بزرگی هر انسانی هر پوزنه این هیچ کمالی نیست کمالی اینه که در محن کلام میکنه و کهلن هم کلام میکنه یعنی در زوانی وقتی میره بعد میگرده که به دهول حضرت ایسا هست از کهلن و از صالحین درجه یک هست صالحا چار درجه داره نبیین و صدیقین و شهده و صالحین آمه لکن یہاں منا منا صالحین مراد صالحان درجه یک یعنی از انبیاء رحمتہ اللہ علیہ وقت کہ اللہ تعالی پرشتہگان دستور داد کہ بیرید مریم این بشارت را بدهید حضرت مریم در جواب این بشارت پرستی جل رب انا یکونگی کی کہتے ہیں تم شواذ برای من فرسان خالان که راه پرزن در دنیا راه مشروع غیر مشروع است و بهیچ کانالی من مسلس به هم من بشری دست نفده نه از راه مشروع و نه از راه غیر مشروع ولم یم سسمی بشرو سال تعین کفیت که کسی جئے خودش نمی داند خدا را به چی کهیت فرزند می دهد تأجب دارد که خدا به بشارت فرزند می دهد و سیصله توالد و تناسل در دنیا با ازدواج یا از راه آینا اون از مست بشره که من بشری دست نزده کالا کذالکی الله هرشت فرمود بدون تگه به همین کهیت الله یخلک ما یشان، کذالک الله یخلک به همین که بیه، که بس نشدهای به ازبشر، الله داره خلق میکنه آنچی میخو، تین حضرت عیسی حضرت زکریای السلام هم فعل کرد که اینا یکون لی غلامون. و وقد بلغني الكبر و قال كذلك الله يخلق ما يشاء فرمود الله يخلق ما يشاء الله يخلق ما يشاء به همین بشر کرده پیدا الله خلق میکنه چرا هر یک چیزی فیر و را با خلب تأیید کردند و آنچه که بالاتر از معموله، اون را با خلب تأیید کردند. اللہ حالا اونجا گفت که به همین که کیتبله پدر هم است، مادر هم است، لکن خارق عادتی نیست زمان سمر نیست، زمان پرزن نیست. مادر هم پیر، مادر هم پیر و نازای پس اونجا دیگر زیاد تعجب آور نبود که اللہ تعالی حسد معمول که به همه میده در زمان فرزند اللہ تعالی بیعیاب حضرت خانمش فرزند نرایت کرد اونجا یفقلو بود چون سهده اسباب خارج یا در عادت نیست خارج این که هر دو تا پیر ہے معنی غلط ظاهرم پیری ہے چیزی دو نو هستد لیکن اینجا خارج عادت بیشتره و خلق رمونه میگن که بالاتر از اصواب و تصور باشه. این خطر اللہ تعالی اینجا خیخن و خلق می کند آنچه می فقط مشریت خدا باشد او خلق می کند و انجام میدهد. دهد ویده قضا عملن انجام آنچه خدا می خواهد آنچه خواهد اینه که وقتی پیسله می کند ایجاد عملی را فَإِنَّمَا له کن، كُنْ فَيَكُولُ باش پس اونی شوه فوق حضرت مریمه بشارت داد که وجیح می آید که دنیا و ناخره و مغربی از مغربینه کلام می با مردم فلماده و کلام و اصطالحینه وسط حضرت مریمه شآل کرد کهیت فرزند را که چطور بمن فرزند نهات میشه الله تعالی فرمود به همین طریقا بدون مث بشد و با اخفاقات بغیه فضائل عیسی علیه السلام ادامه کرده. در داد و سر سوال حضرت مریم بو جواب داد کی و تو مرتبه ادامه فضائل عیسی بود. اونی سارا خودا شما بشارت به کلمه از خودش میدهت اون چنان کلمه است که یعلم الکتاب اون کلمت مخلوق من الله خدا و رتالیم می دهد کتاب حکمت، تورات و انجید چهار چیز خدا و رتالیم میده؟ دهد هم کتاب و تورا و انجید هم حکمت و تورا و انجید مراد از کتاب چی؟ جمیع متفکرین می نویسند که مراد از کتاب نوشتن یا لوشتن نه الله تعالی نوشتن که حضرت عیسی می آموزد بدون استاد و بلد نمیشه. نویسندگی نوشتند. خطاطی الله تعالی به نوشتن بدون استاد ورا او قلم به دست می و می نویسه می کنه. حکمت و دانش ام اومن میسته می کنه تعلیم حکمت و دانش را. تورات خوب کتابی هستی که قبل از عیسیٰ ناظر شده بر موسیٰ علیہ السلام و همه انبیاء که بعد از موسیٰ محبوش شدن کتابشون تورات بوده خاندند و تعلیم و تعلیم و, و درس و تدریس کردن همسین این یه الهی این کتاب را خواندن و دست و تدریس کردن انجیل خوب کتابی است که در خود اسلام ناظر میشه اللہ تعالی این چیز را لیکن بعضی نگ مراد حکمت سنت و الله تعالی جب حضرت عمران زای اول به مریم ابلاغ کرد خدا يعلمه الكتاب که در آخر زمان می آید حکمت این پیغمبر آخر الزمان با چه حادث قادر به حکمت شده الله تعالی تورات هم اول تعلیم نیده و انجیل را و حسد ایسا هم تورات را میکرند بلی بنی اسرائیل تمام احکامات الهی در تورات بودن انجیل فقط مده و تاریخ و بزرگی و ثبات اللہ بودن حرک چیز را حسد ایسا تلاوت میکرد تورات را تلاوت میکرد و احکامات همه در تورات بودن و در انجیل چیز و صفات الهی که آیات ایمان خانی لا اتقات خدا رو بیان میکنم مثلا آیه کرسی اللہ لا اله الا هو الحي القیوم این همه صفات الهی بیان شد احکامات در دورات در صفات الهی ما دحی الله سنای الله حمد الله تشبیه الله بزرگی الله فرمانم الله در کائنات و آخرت در انجیل احکام احکامی جدا اسقا در تورات بود حضرت عیسی هم تورات میخواند هم انجیل میخواند انجیل برقرب خودش نازل شد و تورات ماجر شده بود در بیان مردم و همان طوری که الله تعالی تعلیم داده و رسولا این رسولا مطل به برای بهش معروز و قرار میدهد الله اون کلمه الله را رسولی به طرف تمام بنی اسرائیل و می این او میگوید این مزانون را به او انایت نموده که بگوید او خدا رسول میکنه لابنی اسرائی او او, او اتاکی بگوید لیاکولا یا یکولو حضرت میگوید همینی کچیتکم لآیت من ربکم بنی اسرائیل من پیش شما آیه آوردم از جانب رب شما آیه تشریف من و آیه می رد و نشانی برای این که من پیغمبر خدا هستم این معجزه است که منم انی اخلق من عتیه این نشانی که من برای رسالت خودم به پیش شما آوردم اولین اینه تشریح آیه انی اخلق لكم من عتیه من اندازه‌ می کنم من اخلق به معنی اسد دهم من برای شما تصویر پرندر را می کشم اون هم مثل صورت پرندر اخلوکو در مثلیلات شما نبودی خلق دو معنی داره یکی خلق به معنی از از ادم به وجود آود یکی خلق به معنی اندازه کردن و تصویر کشیدن این اخلوکو به معنی اصاب درو و اکد فتبارک الله احسن الخالق تک خلق اینجا به معنای از عدم به وجود آوردن نیست خودش تشبیه من اندازه می کنم برای شما از گل مثل صورت فرنده گله من تصویر پرنده را ترس میکنم او پشت سر فا انفق و فیه پس من در او پک میکنم دم میکنم فا یکونو طایرم به اذن الله او پرنده می شود به که حکم خودم خارمندی است خارمند تکبیر کشی پرنده و دنیدن است او پرنده می شود به اذن الله من تکفیر براندا نمی و من خوف می کنم امید شود به اذن الله حکم خدا و خار می نشم این تکفیر کثیره شما هم می کنید و دم هم شما می تونید بگوینید از اون تکفیر شما و از اون دم شما اوپراندا نمی شه به این موضعی من است که من بنده مقرب خدا هستم و رسولم این اینکا را هر انسان می خود اخلق لکم من الدین کہه اکت تیر فانفخو یک فیکونت تیرم بی اذن اللہ فقط اون چیزی راکی من دست می و من دست می میشه به حکم خدا موت تحمیلی که خارک عادت هاش اون چمال من می خدا هست این ها برای علوهیت حضرت عیسیٰ علیه صلی اللہ وسلم این موجزات عیسیٰ علیه صلی اللہ را دلیل علوهیت نکتن حضرت عیسیٰ علیه صلی اللہ وسلم نگو این حمل با ازناللہ من ایک مفروف خدا است و موجزت و غمین ابره ال اکمه وال ابره درست می کنم من کورهای مادرزاد را اکمه کور مادرزاد وَالْأَبْرَثُ اُنْيَایِ کِ بَدَنِ سُنْتِ پیش دارن همون گلهای ستیب شفیدی که در بدن انسان تیران میشن ناصیبان هم اچتن رنجاور هم اچتن که اتباع زمان عزرت عیسیٰ علیه صلی اللہ سلام از ایجاد انکانه ها گل را پرند کردن کاریش کو پرنن این موجزه اول حضرت عیسیٰ بود که به اذن الله میشن وار بر کورها و بر عبرسها دست میمالی و آنها را الله تعالی صالح میکردین همشون به ازن الله هستند این فرمان خدا دلیله و خدا به هر پیغمبر چنان موجزه میدهد که انسان های زمان در برابر آن موجزه آجز باشد و در مناسبه هر زمان اللہ تعالی به هر نبی ایک موجزه ایداد در زمان عمرتی عیسیٰ علیہ السلام فند دکتوری و تبابت خیلی گلا کردنی خوی اونانی ها و همانہا ادعای بزرگ, بزرگ بزرگ دکتوری داشتن تبابی داشتن، علاج داشتن اللہ تعالی به حضرت عیسیٰ چنان موجزه ایداد که دیگران در برابر آن موجزه آجز ہے آجز, آجز میداد همچنین در زمان حضرتی نوسال سلام سهر و جادوگیری به آج خود رسیده بود چقدر سهره بودن که حتی سهر بیشید به عنوان یک مسئله زشکی در جامعه آن روز مطرح نبود به عنوان یک به اسلام مقامی بود همانطوری که مهندسی و دکتری و این چیزها به عنوان مقام هستند حالا مهندس میگن حالا مهندس آمریکایی باشد، لکن مهدایی، اب نیست. مهندس کافر چی پایدیدار داشت؟ از اون مهندسی و از اون دکتریا، دکتر کافر. به هر حال این علقابها در هر زمان یک عزت دارند. در زمان حضرت موسی شهر و جادو درمیان میان فراهن به عنوان روحانیت جامع شناخته میشه بیاری بیاری و این کلمه بدی نہ یا کتاب نہیں کرتا لو اہتمام کرتا۔ مسیح کے عالم کے کے حجت اللہ کے آیت اللہ انہا لگا بان انہا ما ما نہیں عیسیٰ علیہ اللہ تعالی کہ زمان عاجز تا الان هم این مرضی پیش را کسی نمی توانے علاج کنید دست مبارکی عیسیٰ و امراللہ علاج کنید کورای مادرزاد را کسی نمی تواند چش چشم بیدن خمیناتی چشم دارن بکش محشون تاریخ دکترها سال های سال زحمت کسیدند و کسیدند الان شاید اگر موفق آمیر فیش جرائی چشم و لیند تا موفق آمید گذاشته بشه جلوی فای خود را یک شبی بی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دست می گذاشت بینائی بینا می فوق العاده بینا می خب این حدود که دکترهای زمان را آجت کرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجودا موجودا هم <سلام> مانع شمینه یعنی آجت کننده غیر مریم <سلام> <سلام> هر تغیر نبی بواسطهون عمل نبی آن را عاجز نمی‌کند این قاتلی نمیگه موجزه عاجز کننده خوب به خاطر 20 سال صلوات سلام الله تعالی یک موجزه داد که تحویر پرنده میکشید و دم میکرد و پرندهیش شد بدن الله او بره ور ور و الاقمه و الابرص او هی الموت و هم زنده می کنم مرده ها را زنده کنم لیکن این همه کارها به اذن الله است او برغل اکمه و الابرس و اوهی الموتا به اذن الله به اذن الله اذن خدا به من الله تعالی این مواجده را اینات کرده که وقتی من مست می کنم به اکمه و ابرس او سالم می شوند و داره چشم شونم به اذن الله آره کار من دسته نیه وجہ خدا داده و و اللہ تعالی داده کی شما در خانه و چی چی چیزی را شما در این چیز را دی ان چیز را دی دعا دی دی. این و نشانی از برای شما ان کنتم مؤمنین اگر شما یه ذر ایمان دارید، ای بنی اسرائیل شما دم ایمان می دم استقوام می خود را متبع تورات می داری این همه خرافات را در دین اسرائیل آوردی و داخل کردی، در دین موسی علیمات من نبی خدا حالتم هرچی من میگم گم این حد نبوت من هم من نبی خدا هستم، این موجزات من لحظر بابت کنید ولحظر نبی مطاحت ار طورات نوشته شده است که انبیا مطاعن اطاعت کرده می شود قولیاء انبیا موظفن که برای نبوت خود اظهار کنند و اظهار نبوت کنند انبیاء رحمه صلاة والسلام برانها ناکمه که اظهار نبوت و رسالت کنند لحظر انگان شانیه که من نبی خدا هستم و هرکن نبی واشد باید متحا بشه حرامای غیر نبی ها باید از نبی اطاعت کنن اظهار موجودات از قدرت اوست نه از قدرت من این فی ذارک لا آیتا لکم ان کنتم مومنی و مصدقا لما بیل یدیه این اتب برجتکم انی کدجتکم انی کدجتکم من آمدام پیش یعنی شما آوردن پیش شما آیه و مصدقا لما بين اليین در حالی که من تشقیق می کنم آن کتاب غیر از که قبل از من بود یعنی تورات من مستدک توراتم توراتی که شما به بغل داری بنی اسرائیل من تشقیق کننده تورات هستم و دیگه این که لوهلن لكم بعض الذي حرم علیكم حلال بیان میکنم برای شما بعض آن چیزهایی را که حرام قرار داده شده‌اند بر شما اون اشیایی که به خاطر ظلم به خاطر تعدی بر شما حرام قرار داده اند، من آنها را برای شما حلال بیان میکند قرآن عظیم الشان در جاهای دیگر اون چیزهایی که بر اثر ظلم یهود به گردن آنها حرام شده بود حضرت عیسی آمد و این جریمه را از آنها برداشت جریمه تن خدا بر گردن آنها چیزهای را حرام کرده که قرآن عظیم الشامیه فبظلم من الذین هادو حرمنا عليهم طیبات احلت لهم وَبِصَدِّهِمَنْ سَوِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْلِهِمُ الرِّبَا وَكَدْنُوعًا هُو وَأَخْلِهِمَنْ وَعَلَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا خب ظلم کردن من طیبات ربراً حرام کردن جائے دیگر اون طیبات را ذکر اللہ سبحانه و تعالی بخاطر فَبِمَانَتْنِهِمْ مِثَاكَهُمْ وَسُفْرِهِمْ بِآیَاتِ با اللَّهِ وَقَتْهِمُ الْأَنْبِيَا این همه جنایاتِ آنها حسن و تکرار کر کردن به این همه را اللہ میگه ما بسیار چیز آره که بودن انها حرام کردیم مثلا پیرا پی, را پی را و جریمتاً و بر انها حرام کرده که انها زنایت کرده حضرت ایسا الاسلام و آمد اون طیباتی که جریمتن بر شما حرام بوده شما را خدا جریمه کرده و طیبات را بر شما حرام کرده من اونو آره بر شما حلال بیانیتونه خمنده بعدی را بعد یدو المحرمات ولئوهل لنکن بعداً لذی هرم علیکم واذا ان اشكالايي که بر شما حرام قرار داده شده آن من حکم مهلت را برای شما بیان میکنم که بنا الان شما دنیما شودی سال ها است بر شما ستر حرام بوده الان حلال میکنم برای شما و هلل لكم هذا الذي حرم عليكم و بعد وجدتم بایه من ربكم این ادعای نسخ بلا دلیل نیست برای این مطلب من دلیل هم میارم از طورات دلیل ذکر میکنم از انجیل دلیل ذکر میکنم که این چیزهایی که بر شما حرام بودن الان الله تعالی حلال کرده خب در طورات جلیمتن حرام بودن در اصل از طیباتن و الله تعالی قانونش اینه که طیبات را بردندگان خود حلال کرده خوهلت لكم الطیبات مثلا بیه کلیه بیه خوبیه سهل عزت داره روغنی زندگی مردم در گذشته بیشتر بانون روغن دامحا بوده پی بوده یا روغنی کلف شیر گرفتن یا روغن پی دیگر روغن نباتی الان ایجاد کرده بشر از یا ها هم روغن استثارت میکنن که اقدیم خیلی چلی روغنی استثارت میکنن زیاد برای خوردن مصرفنی شدون روغن گیاهی برای چیزهای دیگر استعمال شد برای چرد کردن کشتی ها وغیره وغیره بکار بیرم امون من بشر اللہ تعالی زیاد کرده گیاهی اون از روغن در اختیارش گذاشته پنبه هر سو دانه پنبه او، حافتار گردان او، این گیاهر هم اللہ تعالی ماده روغنی داده که به بشر اللہ تعالی روغن نکارده در گذاشته این چیزهای طیبات فی این چیزی بسیار طیبیه الان هم طیبیه و اون انسانهای که قدر شمید هستند بگنه انسانهای که بکرند و بخارند انسانهای که رو بکرند برن و برند سربرد برای کارند این خاطر اللہ سبحانه و تعالی به حضرت عیسیٰ علیه السلام این موجزات را داده بود و این کرامات را که گفت من آمدان مصدق لما بین یده من التورات ولی اوه الله دیگه حلال کنم برای شو بعد اللذی حرم مالک و جیتکم با آیت من ربکم برای این مطلب هم من دلیل آور دارم برهان آور دارم فتق الله و طول اول به ترتیب خدا و که ادعای رسالت من با دلیل ثابت است حق درک خدا وازمن در. و از من اطاعت کند و اطیونی چرا داری تمروت می‌کنی خلاصه دین مسیح علیه السلام حضرت مسیح علیه السلام مثل انبیاء دیگر بنی اسرائیل را گفت ان الله ربی و ربکم الله مالک و اختیاردار من است، مالک و اختیاردار شما هست باید از این مالک همه من الکه ها اطاعت کنند از این اختیاردار همه باید اطاعت کنند الله رب منه مالک منه مالک شما هست اختیاردار منه و اختیاردار شما هست نیمت ها مالک همه نیمتها وجود ما الله سبحانه و تعالی ان الله ربي و ربكم فاعبدوه اذا كان الامر كذلك بحث الله تعالی معبود بر حق از موجود دیگر نیست فقط مرا عبادت دی. جانی مالی زبانی هر عبادت را به اختصاص بدی ل معبود و نه دیگر معبود یهودی ها حضرت عزرا معبود معرفی نمی کردند متصرف کردن، الله تعالی هم در بوجودی من و در کارهای من متصرف اخيار داره مالک و هم مالک و متصرف در امور شما الله. لذا کسی که مالک هست و کسی که مدیر و مدبره در تمام کارها پشپاید و عبادت بشه جانی مالی دباني. فاقد او ها غات غات مسلم. این اثرات مسلم. سرات مستقیم را قرآن ازیم تفسیر کرده یکی در سوره یا تیم انه بدونی ها در سرات مستقیم و انجا به زبان ایس قبر مریم یهودی غا شما انبیارا اولیارا بندگی می کنید که یا خود ایسا شروع کردم به ستایش و بندگی حرکتش دکنه ایناللہ ربی و رب, و رب و فا عبدوهو فقط اللہ را عبادت کنیم آنچه عبادت است حق اختصاصی اللہ بقانی دا اللہ را سجد کنی دا اللہ را هذا صراط مستقیم صراط مستقیم همین شما فقط و فقط اللہ سبحان و وتعالی را عبادت کنیم هذا الذي أمرتكم به هو الطريق الصبيع الذي أجمع عليه الرسول قاطبتا وهو المنسل إلى خير الدنيا والآخرة هميني فكاد خدار عبادت كنين في همين أنبياء عليه الصلاة والسلام برأي مسألة اتفاق تاشتغل خلصين القصة اللہ تعالی ب مریم و علی کر خدا به بشارت به کلمه‌ای می‌دهد است نام عمران تو این کر المسیح عیسی ابن مریم دیگر استطات کن خیری برا بیان کرد که اون کلمه‌ای که خدا به شما عنایت میکنه دارای صفات از علم و کتاب و حکمت و قرار میدور رسول و امیہ ایت نہیں میدیاد انیکا جهت کو و ایت می رب و این تبلیغات را میکند خلاصه حضرت عیسی علیه السلام اندماج که حضرت عیسی با این تمام صفات که دنیا آمد و تبلیغ کرد و ارشاد کرد و پیام خدا را ابلاغ کرد لیکن قوم ایوا کرد و به جای اجابت اِنَّ الله ربی و رب قوم فاعبدو هو راض سرات مستقیم تشمن قتل ایساع الله اللہ الله معذور. فداری شدند که بنام حواریین حضرت ایساع اصلاح کبرا از آنها کرد. فلاما احد من همون هنگامی که احساس از بنی اسرائیل کبرا یعنی آنها قتل حضرت قبول نکردم قال من امساری الله حضرت ایسا علیه صلی اعلان کرد در میان امت اجابتش که کی که ناصر من مؤین من مددگار من تاب خدا برس تاب خدا برسیم که موت برای ما بیایم و ما دين دنیا دیگه تمام بشی تا اون لحظه که با من یار و انصار که تا تاب خدا برسیم یار من کیه قال الحضاریون نهد انصار ما یار خدایی یعنی یار دین خدایی همانطوری قرآن عظیم الشان نصرت دین نصرہ نصرت خودش میفرمایند انسان فر الله یانصرکم ویتثبت اقدامکم اگر شما خدا را نصرت کنید یعنی دین خدا را الله تعالی به اندازه‌ی دینش برای خدا محبوبه که نصرت دینش را نصرت قوانینش را نصرت خود می کند نصرت من اهل یمن گفتند ما ناصر دین خدایی آمنا به مطابق دعوت شما اول ما ایمان به الله آوردیم و اشهد ان لا شما هم صاحب وقتی که ما همتن برای خدا تسلیم ربنا مناجات حواریین ربنا آمنا بما انزلت ربنا ما ایمان آوردید ببین این حضرت قرارانه گرامی چه تربیتی یافتگان نبوت خدا را صدا می بنی اسرائیل تسمع حضرت تسمین حرکت حضرت عیسی علیه السلام والسلام را گریزان و حضرت عیسی علیه السلام والسلام اظهار کرتی کیه که یا رو یا دین خدا همه حواریین گفتن نحن و انصار الله اظهار دندگی کرده آمننا بالله وشهد بی اننا مشلمون سواق نبی خدا فشکید شاهد باسی که ما همتن برای خدا تشویم و پاس مناجات نوبت دعا آمد و فریاد حدثیت سبحان و سبحانه وتعالی را مناجات ربنا آمننا بما انزلت ربا این مناده ها. ما ایمان آوردیم به ما انزلتا به آن کتاب هایی که شما نازل کردین تورات را قبول داریم انجیل را قبول دارین زبور را قبول دارین به ما انزلتا ما ایمان آوردیم و اتبعنا الرسول و اتباع کردیم رسول شما را که ایسا ابن مریم لذا فتبنا ما الشاهدین شما را دلیست آنما یک بر این مضامین مذکور گواهی میدند ما را در لیست آنها قرار میدید و چنین ما با شاهدی که بر این مطالب شاهدی میدند شاهدی ایمان را میدند شاهدی اتباع رسول را میدند ما را در لیست آنها قرار میدی یعنی yani مؤمنین کاملین خلاصا یا شاهیدین ال توحید ما را دلیس که آنهای قرار بده که شاہب توحید تو گودن و به وقتانیه که تو اعتراض کردن خلات اناد یهود برای اضرار نشی علیه السلام مکر و مکر مکر و مکر اللہ آن هم مکر کردن برای نابولی حضرت عیسیٰ فاللہ سبحانه و تعالی تدبیر کرد برای نجات حضرت عیسیٰ والله خیر الماکرین اللہ تعالی بہترین تدبیر کننده از سوال تدبیر کنندگان ماکرین اللہ بہترین ماکر است بہترین تدبیر کنندگی است تشاغولا نگه مکر و مکر اللہ خانها تدبیر و چارک کردن که حضرت عیسی را نابود کنند اللہ تعالی هم تدبیر کردن که حضرت عیسی را نجات دیده لیکن اللہ از همه ماکرین بلنده شد بہترین ماکر یعنی بہترین تدبیر کنندگان اللہ سبحانه و تعالی از همه تدبیر کنندگان خیر الماکرین اللہ خوب این ها خانه حضرت خانهی که حضرت عیسیٰ آن قرار داشت و مادرش هم آنجا بود این ها تسمیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام را گریست وارد شدن در خانه خدا حضرت ایسا را به خانه به آسمان دارد او شکری که وارد شده ظاهرش را خدا شبیه ایسا کرد چهره ایسا کرد در آن واحد این دوی خانه ندید برگشت تو تمنی که فرار کر. کرد گرفتند قرآن ادامش کردن بعد که خوبی سر ایرنامی ما بجاید دیگاه کردن نا او باو پائی نا اون کتی نما دو بیشه رو از چهره شکمائن تو رو این چهره شکمان چهره از همین جا اختلاف شد ایر درس ایگو که تماشاگر بودن سال سلام کردن که علیہ السلام ربنی خوشتا ارحا پرش کردن که وای ایسا را خوشتا انهایت که پیر که همون مردکه ای خواب پر اصلادی ما اختلاف از روز ایدامی قاتل حبرت ایسا شروع سبه فیر بین اسرائی اللہ سبحانه و تعالی برمو اون هم ما کر کردم برای نابودی حضرت ایسا و ما تدبیت کردیم حضرت ایسا نجات بدین و ما براندش بدین و اللہ خیر الماکرین ادقال الله یا ایسا يا دُونُ لَئِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِحَضْرَةِ عِيسَى إِبْرَاهِيمَ قَالَ فِي إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ تَبَوَّأُوا فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثم الي يمرجوكم فاحكموا بينكم فيما كنتم فيه تختلفون در این خطاب الله تعالی به حضرت عیسی شار वादा و یک وعده به همه داد که پنج وعده از حضرت عیسی هم به این وعده شریفه اول الله تعالی به عیسی وعده اول که من سبارا کاملا توفین کنند و وفای وفی یا توفا یا توقف توفا یا توفا توفیات به معنی اخذ شی کامل در موت سروران گرامی که ما اورا وفات می گیم و متوفا می گیم هم اخذ شی میشه معنای موصوله توافی یعنی قدرت کاملا اخذ کردن و گرفتن لغت است که اخذ الش واقعا امور یک نوعی هستند زاوین قدرت است ما شما را کاملا اخذ نمی‌شود و این اپ به تفسیری یعنی و رافع شما شما را ما بولان می‌کنیم به طرف خود روح با در حال حاضر و شما را ما هم تطییر می کنیم از مترای کسانی که کفر کردن فاقد می کنیم هیچ ذرهایی دشمنانه می توان وارد کرد و شما از مکر کفار از توهمات آنها هم فاقد می کنیم که شما را توهمات نهود را یا آنهاایی که اراده ات را شما را داشتند ما شما را کاملاً تطییر می کنیم متاخرک من اللین و جاء الذين اتبعوك فوق الذين كفروا الى يوم وقرار ما ان하였 را کہ پیروئے تبا باشن کیا باشن ما انھا بالا قرار کردن امروز یهودی آتی حضرت عیسیٰ را کردن در طول تاریح یا سیترے مسلمانا آبران که فیروان واضی صلی وسلم یا سیترے ہمین مسیحا بر یهودی آبود ویهود بر فیروان یا ادعائی حضرت عیسیٰ حضرت عیسیٰ دمانی امروز این حضرت ایسار برد و زنان ہوئی دیارا بلین کافر آئی بیا گیره تی نستگوشو ان لانتی ها وانا ها همکارا در برابر سلوانا شرک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمودا خفر ملت و واحدا در برابر شمائی کیا اگرچه بین خودشان غم اداوت بسیار تنگی نگاستا و ما کار نمی‌کنیم. هایرک شما را ادعا می‌کنه. حقیقتاً یا ادعا؟ بالای آنها کافران ترژتیامه. نخست به شما شماره ولادت زناء می‌کنم. توم بعض به طرف در دنیا و برزخ همه شما در بار من باز میگردید و من خدا فا و بینکم بین شما فیصله عملی میکنم در آن مسئلهی که هستید شما در آن مسائل با هم اختلاف میکنید در مسائلی که با هم اختلاف داری مسئلهی فیصله شما را به من انجام میدن در برزخ انجام میدن حالا بیان فیصله به چه طریقه فیصله میکنم فعمل الذين كفروا انا هاي کی کو بدون صورت حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام را اهانت کرتا نا و اللہ ولد جنا ب یا غلوب کردن حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام را به مقام الوهیت رسانی ده انا مارا که کافرن به تو سورت فو عذبهم عذابا شدیدن که دنیا والآخرت من آنها عذاب میدم عذاب سرم سر در دنیا والآخرت و نیست برای آنها هیچ مدد هیچ یاری یاوری. خب بیان فیصله دیگر و اما الذین آمنون اونها ایمان میارن و اعمال ساله انجام میدم پس کاملا پرداخت میخوند به آنها حجور آنها حجوران ها به انها کاملا پرداخت میکنه ببینید این دفعی معنی موت نیست چرا میں این طور میگنم؟ چه احمد اسخان چه غلام احمد تاد یعنی نبوت مسیحا گفتن که حضرت ایسا فوت کرده قرآنم گفتن متوافی کرد تو کردیم که توفی به معنی اصل شه توفی به معنی موت دادن نیست اون مجازن دا وقت کسی را که موت میده نمیگن متوفا شد یعنی اخش کرده شد از این دنیا را شد به این خاطر این همون ریشه کلمه ماده بادیه. به وقتی به وقتی یه معنی چیه که موت میده یا کامل حامل پرداد بکنه ها حجور آنها والله لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالمها را دوست ناد آتا ہے خفار و مشریکین ظالما زورترین ظالما کہ بخدای کریم و بخدای عظیم و خالق و مالک خود و بصاحب نعمت حق ملید این حضر عالمین ہے جمله معترضه برای صداقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم لذلك نلوح عليكم من الآيات و الذكر الحكيم ان ك في مورد عيسى مادر شما بر شما تلاوت کردیم این ها را تلاوت می کنیم بر شما از آیات و ذکر حکیمه چند حکمت آمیز هستند که همه حکمت هستند لذلك سلوه عليه من الايات الهاديه از طرف عالم غیب و وحی میاین و ذکر حکمت آمیزن ذکر حکیمان، نصیحت های اصد که لم یتغیرن این ها حقایت روی اینه مثل ایسا مثل ایسا یعنی حالت بسیار عجیب و نادر ایسا نظر خدا در ازل که مثل آدم مثل آدم است ایستاد کم اسکم، مادری دارد مادر هم از بشر است از پدر و مادری خلق شده پدری ندارد آدم حقیقت نه پدری دارد و نه مادر و از یک چیزی که اطلا بابشر ظاهرن هیچ موافقت ندار از خاک خشک را بابشر گویا شنوا بینا در دانا، دعنا چی خاک خشک را الله تعالی آدم را از خاک خشک خلک کرد خلقه من طورا خاک خشک را با انسان چی نسبتی؟ ولی انسان از مادری پیدا شده مادرش شد از کدر و مادری پیدا شدن؟ مشخصه مریم بنت امران از بدن حنم متولد شده ایتی که چیز که شما میگی شما نمونه ای رسان بگی یک طرف کاملا موجوده یک طرف نیست و آدم دو طرفش شید چیزینه خاک خاک خاک را نگاه کن و آدم گویا و شنوا و دانا و آلیم نکم علم آنغادر علم آدم علیه صلی اللہ وسلم داشت که پرشتگان در برابر علم و معلومات عظیم آدم اظهار لا علم لنا کرده انه مثل ایسا حالت عجیب حضرت ایسا نزد خدا که مثل آدم مثل حالت بشیار عجیب آدم است آدمی که خلقه کالبود آدم را خلق کرد از خالق خود ثم کالا له کن خیفون الله تعالی به آدم گفت باش انسان قرن انسان شد جاندار باش به کالبود حضرت آدم خاک خوش رجم کردن خمید کردن سیاه شد بعد دو مرتبه خوش خوش شد آخرین ماده آدم خاک خوش کی خوش شد اول خاک خوش جم کردن اتکاریت شد پر ترتیب دادن و این خاک تخفیف و بزرگ این سیاه شد بعد دو مرتبه خوش خوش شد من سر سال شد آدم علیہ از خاک خوش خوش شد وقتی هم با گفتن تن به وجود آمد، ایشا هم به کلمه تن خلق شدند. الحق من ربک، هذا هو الحق. امر واقعی، همین قد زان پیغمبران، پس نباید شما پیغمبر از کسانی که شک میکنند. سبحان الله، پیغمبر شکی ندارد. این یک نوبت دقیقیه که شما شک نکنید یعنی هیچ شک کنیندهی نباشید. که الله تعالی حضرت ایسا را حضرت و سلام را بدون پیدا خل کرده. حق الجانب پردگار شما. شما نباشید شک کنینده دارد. پس بگران خرد شک اتران نداند. فمن حاج جکا. اقرون الله تعالی وقت نجران. که آمده بود و این آیات ناظر شدند نسبت به الوهیت حضرت عیسی علیه السلام که پیغمبر اسلام نهایت جر و بحث کردند و انعمت علیه الله سبحانه و تعالی اراده اراادات که حضرت عیسی بدون ستاد خرک شده مثل آدم علیه السلام که بدون پدر و مادر حضرت عیسی فقط مادری دارد ترین دار و بدون قدر و مادر انسان گویا و سمی و بسیر شد داناشت. و, داناش و تغییر خدا به آدم داده بود که تمام پرزندان آدم چه علومی امروز دارند و در بدشته داشتند تنها آدم و خدای تمام علوم را الهی کردند از دارهای عجیب الهی همینند دا دائر دارند اکنون الله سبحانه و تعالی میگه اگر این وقت نجران تحریم نشدن از این بیان هنوزن و شما مهاجه کردن مخالفت کردن و این دلائل را نادیده گرفتن شما اعلان مباهله باید هم مباهله چیه؟ مباهله این اقمابیه این تذرع کنین پیش خدا که قاسم برباد این این حسنون ظاهلات فمن عاج کفیه کسی که با شما خصومت کرد درباره ایسا من بعد ما چاہتا من العلم بعد از این علومی که پیش شما آمد و حقائقی تو پس بگو بیانها تعالو بیائی وقت نجران ندو ابناءنا ما هممی خانیم بچه خود را <شماره> شما و ابنائكم بچه های شما را شما بگیر پیغمبر حال و بیائی ما مسلمان ها که من پیغمبر هاست ما بچه های خود م... را میخانیم و ابنائكم و بچه های شما را هم میخانیم و نسانا و زنان خود را ما میخانیم و نسائكم زنان شما را هم میخانیم باذ فرمود و انفسنا و انفسكم هم خود را می خریم خود را احضار می كنیم بران چیزی شما را خنیم احضار می ثم نبته بعد همه ما رو می پیش خدا و قرار میدهیم لانت را بر کاذبین دیگر اعلی هر در مسیر حضرت عیسی نو گبلان اکبر تو سنایا ابن اللہ یا خود اللہ میگن به صورت مسیح ظاہر شدات لانت خدا را بر کافر قرار دی این اعلان مباهله شد اولا آیا آنها حاضر شدن برای مباهله وقتی که من در اول سوره گفتم که هشتاد آیه نازر شده وقت نجران بود در آنها ستید هم بود و آقب هم بود و این ایلان را کردند آیا آنها حاضر شدند بی آیت کن روایت خیلق انجا که آنها حاضر نشدن اقراج البخاری و مسلم ان الاقه با الله و سید القاب تران اينها بودند بيشبه پیغمبر آمدند فرادا ان پیغمبر فقال اردهم لصاحبه ييه کیا صاحب شما ملاعنه نکنی دیانه مباهله و لعنت و نفریم من کنی برکازه به خدا کسم یخیی که از سید و آقب کو. که نمایندگان این وقت بودند. بودن لئن کان فلا فلاعننا لا نفله ابدا ولا اکبنا من بعدنا ابدا اگر ان نبی باشد و ما ملاعنه کنات تو نماد استگار بشین برای تمیشه و نن نسل ماه فکر کردم نه چیکار می‌سالم. تو تا تقلیب شدند گفت فرق هم هرچی شما بخواهید ما به شما می‌دهیم. فباعث ما انارتولم، آمینم. با وید مرد امین بپرس. هرچی شما بخواهید ما به شما می‌دهیم. ولی این تقلیب می‌کی. فکر کن کمی آبای ویدا فرمانده آبای ویدا بلند شو پر مقام خالق فرمانده و هدیه امّا ابو ویدا ابن جرّاره که بلند شد وقت امینه این امت این یک روايته و مسلمان که اصلا رخ نداد دعوت شدن به مباحثه برای مباحثه کفی ابو نائم فی الدلائل ابن عباس که من, من نسران من نفر از نصران النجران از نفر قدیمو ولا رسول الله صلی اللہ وسلم من حمول و سید دهم را و و سید که در روایت ابو و مسلم فقط و سید نفر در این روایت ابو فی الدلائل میگه که از اون نفر آقب و بود اللہ تعالی نازل ال ند ندو ابن وقت دعوت مباہلہ دادا شد نفر رئیس که نفر بودند. وقت آیر نازل شد و بیانهات از داده دادا بیاید مباہلہ اللہ علی تو همه گفتن که اخیرنا طلافت ایامی ای پیغمبر به ما مولت بده پیغمبر نای محمدوارا مولت بده سه شبانه روز خب پیغمارو ما مولت داری تا سی شبانه روز فذهبوا الى قریضة والنذیر و بنی تینقا من اليهود شکر بیلی بزر بني نذیر و بنی قریضة و بنی تینقا که در مدینه و اطراف مدینه مشکل و آبماوا و آب ملجا داشتن این سالا رابطن پیش آنها و گفتند که بما چنین در از داده شده شما چه مشورمی ده برای مذاکره پیشی یهود رابطن بن قرزو بنی نزیرو بنی خینقا فاشارو الیهم اللہ ایو صالحو و لا ایو لاعینوه یهودی هاکم اللہ بودن در سالحای سال سالحا دیده بودن پیغمبر را دبابر رسیده بودن پیغمبر خدا هسته دو او وقال گفت النبی الذي نجده في التورات این نبی ما او اوثاق در تورات میبینین فصل هو رابطه با غنبر مصالحت کردنالا آل فهول دین کی سفر اینامت آچه بوده که حدار داشت لباس بھی دی وحضار بھی دی. در ماه سفر می دید و حدار در ماه رجب و در هم می دید با این مصالحت کرد روابط نکردن دو رابط خو روایت شده دیوینی میگه رویا سر بیندازم. اینا گرفتن دوستان ما برای ثبوت امامت و برای ثبوت برایار و آیات مختلفی متماسیت میشوند. من جملات اون متماسیکاتان عایه مباهیل است که عایه مباهیل گف پیغمبر بیا امامی کنیم بچه خود را. یاد پیغمبر حسن و حسین و فاطمه را خان او بچه های شما را میخانید مگر حسن و حسین و فاطمه کجا خودن این مسجد النبی کنار مسجد النبی حسن و حسین و فاطمه خاند. از خانه بیرومیان تو مسجد النبی میاید ایمه در کشوری دیگر در شهر دیگر در دفنی دیگر در بازاری دیگر در محلی دیگر که نبودن پیغمبر علیہ السلام انہارا دعوت داد در مسید می حسن و حسین و فاتر دو سارا همون حسن حسین کے همیش بلند بھی شدندو کچھ جلو بھی دندو می لیگ دیدندو سر ممبر پیغمبر علیہ السلام پیغمبر انہارا بھی آبوشنی کرے نتانا نتانا و نتا خ so, ابنانا حسنہ نشانہ فاطمہ فلصہ انفسان حضرت علی ثلاثه نفس پیغمبر علی اصل حافظ جانشین پیغمبر ہم علی و اگر نفس پیغمبر علی پس نکاح با فاطمہ چکو اپ نثارش تو با نفس کی نبی عن قسنان یعنی علی خوبار از انجا دیگرین مغردمات هن نتیجه چیه بلایت مال علی خلافت مولی علی این نتیجه مطمئسک شنگار خالان کی انتو تا روایت من آور که اصلا برای مضائلین حاضر نشده روايطاً شده كنبي رسالة اختیاراً للمباهرة علياً وفاطمه وولدهما عليهم الرضا وخرج بهم فحينا مرحاً وعبر قلت إننا إن, ان أنا دعوت فأمنوا أنتم من ظالمكناً شماً آمين دي خبية روايط یہ روايط شده ابن أساطر الزجعفر جعفر, جعفر صادق عن أبيه محمد الباطل، رواية ترد فيلم ما نظرت في الآية جاء أبي أبي بكرن بولده، وبأُمره بولده، وبأُسمانه بولده، ولا شك أن الذي يفهم من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يدعو. المحاسین و المجادلین بیشان ایسا من اهل کتاب الى الاجخما پیغمبر دستور دادست این حرم بخاند و پیغمبر هم خان رجالا ونساء و نساء و اطفالا مردها بیایی زنها بیایی بچها بیایی ما هم بچها و زنان و مردان خود رمیاری و یجمع هو المومنین رجالا و نساء و اطفالا وَيَبَتَّهِلُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَيَّنَا الْكَاظِبِ وَكِمَا يَكُولُ عَلْ إِيْسَى سي جمبت عليه الصلاة والسلام في وقت ابنا ونساءنا غفت در نفس خورش غد اعتماد داشت دستوري وَأَنْهَا آمَادَ دَشُدَنْ اَجَرَ آمَادَ دَشُدَنْ بَيْخَمَدْ وَأَكْمَانِ صَحَبَ آمَادَهُ و حضرت عزت و رسول الله همین طور این غد سلام رسول برای هر یکی از برت انسان میل نگاه میکنه، امروز روز مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم را که کنار مسجد در دست مسجد شرق مسجد کرارداره، مسجد النبی شکار، اگر انسان ان هار این این این بمب های خطردار تخفیم بکنه، هر شهر، هر خانه ای ست در چاری حمله میشه، با خودش یک کوچک بود، نیست که ساختمانه چند سادمیتری در ایار پیغمبر می خان هایی نید ای دی کچه از دینستان نگاو سبحان الله که انگر زندگی مختصری دیوده رسولی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه داشت کنی حقا لماید که صحابه را جان کنید پیغمبر انها خورن کو پنس از روز رفتاً مشوره کردم، بلون قرآنه بلون نزیح رایه بودی ها نبیه و می شود و می حتی آقیب یا سید این دو در رئیس یک دیگر گفتن اثران ملائنه نکنیم چه بدبخت می شیم خود ما تنیل و خار و هم نسل ما. و حاضر شدن تهل نبیدن سید انسانی نمی گید بر آمده ملائنه کرده یعنی مباحلت دعوت بود ناظر نشدت او باشی حاضر بیشی قبول داری خمان این خضرت حسنیل را آور فاطمه را آور حضرت علی را آور خود پیغمبر آمار خود رکھا پرمچه جره ما افت نعود بی حضرت حسن و حسین و علی و فاطمہ کی شاعتی بنیاد نما و در طول تاریخ انسان نبوده که کہ نسبت اہل بیت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقیدہ داخل ہے لیکن اس سے ما مقدمہ بھی از این بلایت شادت کنی این مقدمات اسما مقدمات غیلی صحیح که نتیجه نامات روی وقت مقدمه درست نیشه نتیجه درست درمیه وقت مقدمه باطله نتیجه هم باطله رو بایلینش و دیگه ازواد رسول پا صلی اللہ علیہ وسلم ما بچه های خود را می ابنا ابناعنا جثه بنات اطهرات دان حضرت صادق السلام قبل اعلان مباهله وقت کرده بودند رسول الله صلی الله علیه و در این از زمانی که آید مباهله ناسوت فقط دختر حضرت فاطمه زهرا بود دیگر هیچ کدام از سه دختر صاحرات دیگر پیغمبر زندگی نداشتند زینب و ام کلثوم در सिने تا رقیه در सिने دو حیات و سرود نوشته خالتاً جاویی سفره اشتر دو بیشتو چار رویو که در المنطوراً جا فرم نه محمد ان عبیه خالو جا بی عبی بکر و ابنه و عثمان و ولده و علی و ولده اینه جعفر ابن محمد من عدیه یعنی امام جعفر ساده از امام پنجام محمد باکر هم روایت کرده که حضرت پیغمبر حضرت ابوبکر روا برچه حضرت عثمان روا برچه حضرت عمر روا برچه حضرت عیر روا برچه هم خان که اگر اینها آمد ما مباهی لگیم و محط هم, نشو. هم شده آنچه شد در خوضا مشالش المذکور و پیشانی خان ابن عباد روح و دلال این معنی را کردن دا این چکه در شانی صادق شد البته بیان بسیار حق است ان در حقیقت تطبوی آثار را قصص می گنی اگر اون کس یک مسائلی که در دنیا شده آنها را تدبو می کن و بیان می اگر کستگر چکار می کنید؟ یک داستانی را بیان می و یک مدشتر کستگر را دنبال کنید قصد در حقیقت بمانید کردن آسا و کستگر همین کارید صال انجا بمانید قصد بیان این یک بیان حقید وَمَا مِنِ الٰهِ اِلَّا اللَّهِ این ها برای اولویت حضرت ایسا خیلی جرم بازداشتن میست هیچ معبودی غیرست بودا و ان الله لهو العزیز الحکیم چرا؟ که الله عزیزه طوانا هست نیادی ندارد بشریت در محلت دادن هم حکیم است در گرفتن عزیزه و در محلت دادن حکیم او حکمت اشتغازا می چند ثباغی این آئی که کلمات زشتی خدا را مغلد کلمات زشتی که آسمان حبیقات از آن همینه که برای خدا پرزن معرفی می و بیگن نعوذ بالله ابن الله تو اگر انها بعد از این بیان اعراض کردند تو معاملہ آنها به طرف خدا جزاعت پا امرهم ایلاللہ معامل این حدگی به خدا تو جرا که ان اللہ علیم وی المسیدین اللہ تعالی مسیدین را می داند بموقع عذاب شون را عذاب می دخاند در آخر امر دعوت اهل کتاب به ایمان آخرین پیام مباہلتی حاضر نشدن با لطفی خدای هر دعوت ایمان دار قول بگو ای پیغمبر این سخرانی آخر هر جا کلمه قل در قرآن آمده است یعنی سخرانی پیغمبر سخرانی پیغمبر نبوده که هر چی که مدفق علی ساخته و پرداخته از خدا آمده است در آخرین مرحله ای پیغمبر دو بیر اینها رو تبلیغ کن باچی لطیال کتاب هم یهود هم نکارا هم وابد نجران و هم یهودی هایی که مشیر انها بوده نردت بنو بین بین نذیر و بین ندیل و بین کانقا واسکت بیلی بطوردی یهود و بابا برای بی خاطر اللہ تعالیم بارلوت فیلان می کنندر آخریم دوت اہل کتاب توحید یا اهل کتاب تو شکنید اہل کتاب لا الہ الا اللہ از لا الہ الا اللہ موسیٰ کریم اللہ لا الہ الا اللہ ایسا روح اللہ و کلمت اللہ این کلمه را یهود هم می‌گفتند شرکی که یهود می‌تشاد مثل شرک اهل مدکه نبود که در بنابر بوت‌ها و در بنابر مجسمه بیان گردان خمد کنند شرک یهود شرک ناتارا به صورت عبادت انبیاء اولیاء بود و اجخاف بود اخبار خود را روحبان خود را مراده تقرید خود را مطمئن دارد شده با شرک مشفکیر مکه خیلی تفاوت داشت اونها بجسمه سخته بودن از انبیاء اولیاء و نیائش و ستائش را سجده بی کردن و اینها اگر گنبدی نداشتن دیگه همینطور این حبن مریم را پرندش میکردن سالا وانها قزیره اونها میگوتن نمائم دید خدا در کارهای جزدی قزیره مسیحا میگوتن نه این حبن مریم است ویو قاتل قرآن حضورا دعوت دادیان یا علاو کتاب تالوینا کلمتن سوائم بيننا وبينكم بيعيد بطرفي الكلمة كبرى برس بين ما مسلمنا وبين الشماء هم كلمة نعبد علا الله بین ایمان ایلا ایلا ایلا الله همه اسمه امروز هم میگن همه بردون میگن عبادت حق خدا هست هم میگن لیکن الارب برسین اون ایبادتی که به خدا اختصاص دارد و حق الله سبحانه و تعالی همون ایبادت چیه همه مردون دیگه، حتی یهود امی که عبادت شما میدید یهود از پروپرسی، عبادت، حق خدا مجبنه کلمه عبادت را پرستش، پرستش حق خدا دیگه جدیدی بشم دعوید دیگه، ایلا کلمه دید، سوائم بیننا و بینکم اون تشریر کلمه، اللہ نعبود الا اللہ ولا نشرك به شيئا <تصفيق> تاکید برا الله معبود الا الله عبادت نکنی مگر الله یعنی شریک نکنی با او ان عبادت الله هیچ چیزی هیچ چیزی را عبادت خدا شریک نکنی کنی شروران کرامی برا عرض کردی دی عبادت زبانی ہے و مالیه نوع چهارم رو زبانی بدنی مالی این سه نوع عبادت در تمام ادیان مشروع بودن و الان هم مشروع هستن و اینها حق خدا هم عبادت زبانی همی خانده تطویه، تحمید، تحلیل، کلاوک، ذکر، و با نا. زبان حرچی اندازہ عامر بمعروف نیاز منکر ہے انہاں هم عبادت آئی بدن زبان عبادت بدن سمین نماز یک عبادت یہ تشکیل از عبادت قولی اکھنے لیے از اللہ اکبر گرفتے تو دمانا رمائی کی مادر نماز میں انجام نہیں دی انہاں عبادت آئی خیام عبادت رفو عبادت سجد عبادت خادر عبادت با این از خالق منمی بین مقتدر فرمان او حد تمروز حمامی جا عبادت حضر خدا ہے سجد میکنن کبرارا ثواب میکنن کبرارا خب ثواب یک عبادت بدینی مکان مکتوسی داری در تمام این قرآ خاکی و در تمام آسمانها در قرآ خاکی یک بیتیه که کی اینجا باید ثواب انجام بگیره این عبادت دیگر جائن یک مکانی مخصوص برای عبادتی حد که نامش قواب ده یک مکانی مخصوص حد برای عبادت که نامش اعتقا ایتکاف را هم در مسجد چی در مسجد الهرام چی در مسجد و نبی یا در تمام مساعده دنیا این ایبادت حسن خلا مردم ایتر کابره ایتکار دنیش نیش کنیم بیز جای کابره ای بندگانی خدا هستن چکتر شلوگا یونجا زبار زبار اصطاد روزه آبتاد باکی گلوی خودره تنه آبتاد بیشتادن در شهر از کیگریستان. آیا به ما خدا و پیغمبر قرآن می‌گوید رضایت دارد؟ ولی انتخاب بعضنا بعضن اربابم من دون الله. بعض ما، بعض دیگر راب کرار ندهیم جرز الله. بعض شما هیچ حیوان در درابر حیوانی دیگر سجده کرده ها شما دیدی؟ لیکن این انسانه که خدا را ویل میکنه میره مثل خودش یک مخلوقی را سجده میکنه زنده ای نه بلکه مرده ای و قرار نه بازی ما بازی دیگر را رو غیرت خدا رب قرار دادن غیرت خدا یعنی غیر قدارت تایزت کردی خودشمی گوید روادی ابن حاتم عدی ابن حاتم روایت کردی انت فارا هست عدی فرزند حاتم تایی اکتبیل تایی صحیح زمان دوران و معروف در دنیا عدی ابن حاتم به مردل پیغمبر آمد و ایمان آورد. قال نگه افیت رسول الله و فی اونو کی صلیب من زهبین بگردن من زنجیب صلیب مهار بود و بگردن من بود فقال یا عدی اکرم انکه هذا الوصل عدی این بطر از گردن اپی همدنسا وَسَمِعَتْ مَلَائِكَةُ فِي سُورَةِ بَرَاتِ التَّقَدُّ وَأَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَتِيمَ مَثَالِ لِلنَّبِيِّ مُخَالِ اتَّقَدُوا أَخْبَارَهُمْ وَأَرْبَابَهُمْ أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ این ها احبا علماء قدوم برازه چغلی روحبان در آبی شفی رہا روحبان در آبی شفی رہا, رہا ردیگر بنار ردترار دادن غیر از الله سوره توب آیت حوید ادین نگه خورن اعتراض کرد ایخ درباره مسیح در سوره توب درباره مسیحی ها هست که اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله والمسیح ابن مریض مسیح ابن مریم را هم را بکرارتانا عجیب می گوید من اتراز کردم یا رسول اللہ لم یکونو یعبدون هم این حاکی اتبادت لمی کردن احبار روحبان را شکل قرآن مارنی جا اتخذو احبار روحبان و احبار من دون الله فقال پیغمبر قرمود اما كانوا یحللون لکم و یحرمون فتأخذون باقوالهم آیا انا برای شما حلال و حرام بیان نمی کردن؟ نمی گفتن این حلال شما حلال میدانسی نمی گفتن این حرام شما حرام میدانسی نمی کردن کار را سلطان الله تکثیر قرآن را رسول الله کرده برای شاگرد قرآن را تازم مسلمانی سرمبر برموده ما یکولون مغنبودا یحللون لکم و یحرمون فتا خودونه به اخوال هم شما به اخوال آنها تما شما نمی‌دونی؟ قال نامبله. فقّال عليه السلام هو ذاك اتخذوا آباد وربان ارباب من دون الله ما نشنیده که شما آنها را محلل و محرر بخود کردار دادند. دادن ما قران میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله یعنی حلال را حلال نه ها را حلال می‌ذارن حرام نه ها را حلال می‌ذارن فرموده ابروزمان مولوی چایز فرمولوی چایز نے کہا چطور دیجی قشم مولویہ اعتراف کردا معلوم نے اس بات کا شکار کہ ہر چیز ہے جلو ولی این سرگلان درامی و لا یستقیده بعدون آبازن عرباب من دون الله ارباب حمودی محلل و محرمه شما از طرف خود حلال و حرام درست کردیم این حرام این حلال او بر نظر غیر الله حلاله شما دهید برید گفتیم خدا گفتیم حرامه اون نظر غیر الله نزوره تشسته فَانْتَوَ اللَّهُ اگر ایراز کردن از توحید اگر از توحید ایراز کردن تو پس شمائی پیغمبر علیه صلات و السلام بیگویی که اشحد او یهود و نصارہ او احل کتاب شمائی دواباشی که بیاننا مسلمون ما فقط برائی خدا کردن ای موحدون فقط خدا را عبادت جانی مالی زبانی میکنید نه له مخلصون نه له عابدون ما فقط خدا را عبادت میکنیم و برای خدا تشکر میکنیم ادعای ابراهیمیات داشت ادعای ابراهیم دین اپ دینی کی ما داری؟ با دعاهمدا پیش میگم براله استلاب السلام. دوکن دینی کی ما دین ما دین ابراہیم است. دین ما دین نوح است. دین ما دین همه انبیاء انبیا همین بوده کی ما داری؟ سبحان الله کی وبهذا حجه ان ما صايل الدين كالعبادات والتحريم والتحليل لا يخفى الا بقول النبي المعصوم لا بقول امام مجتهد ولا فقيه قديم والا كان ذلك اشركا في الربوبيه وخروجا من هدايه القرآن، التي دل عليها مثل اللهم صراخ يا ادعي فرغان كما دين ابراهيم ودين نوح بلکہ بین ما دین همه انبیاش این داره کرده الله تعالی به پیغمبر گفت بگو بینها بیا از طرف توحید او بگو بینها یا اهل کتاب او ان کتاب لم تحاجوا لنفي ابراهيم چرا شما خصومت میکنید اختلاف میکنید درباره ابراهیم حالانکه واما انزلت التوراۃ والانجیل تو توراۃ به دست شماست یهودی‌ها و انجیل به دست نصارا این دو کتاب آسمانی نازل شده‌اند از الله من بعده مگر بعد از ابراهیم علیه السلام شما دای کنید بر دین موسی دای گنید بر دین عیسی دای گنید چیزی که بعد آمده و در آن تورات و در آن انجیل ننوشته است که دین ایست دین حضرت ابراهیم همینه که هم انبیا اولیاء را به خانین و برای نهاد را بیانو تاریخ موت و حیات آنها را تجلیل کنند. آقایان تاکید کنند شما اغلب ندارید نمیفرمیت بطران سخن آن را خبر شما همینها فاده تو فیمالا لکم بهی علم خصومت و خسومت اختلاف کنی در مسائلی که شما نسبت به مسائل علمی شا داری. شا داری علم نداری، چرا داریت خصومت در درباره مسائلی که لزوما لکم بهی علم شما اصلا علم نداری، چیزی که شما نمیدانید چرا حرف میزنی، حالا مردم تعجبه، الان باز یا هیچ علم حتی دانستن عربی هم بلد نیست. شروع می به مباحشا و الان درست مسحوان درست می آغاز تا حد خواندن قرآن از رو بلد نیست لغت عرب بلد نیست فیش اتادی دست نخانده و می آید اعتراض می کنن ابو حنیبا خلاف حدیث بوده. تمام امام خلاف حدیث کن تو از کجا موافق حدیثی تو حدیثت کی گریبت کی؟ ایمان بخاری حدیثت کی گریبت تا خب امام بخاری حدیثت کی گریبت وہ همون استاذهای امام بخاری و دیار تر رسید که شاگرد استادان امام بخاری آیا شاگردان شاگردان امام ابو حلیقا شاکی نبوده؟ اونها کبار صحابه متسر زندگی کردن نجدی که صحابه بودن تابیو تبی تابیین بودند، انا قد بین نه دانستن الان تو برشو دیدی قرآن دارنی که قرآن کمیش بابو ترکنیزنه یک دسته مللحای مزکر کردنه یهودونه ساره در برابر پیغمبر آمده قرار کردن مباحثه جرد خوردم درمان هارت میزدنه خدا در هارت میزدنه آن تو خبر شما همینها خصومت کنی در آن مسائلی که شما نسبت به آن مسائل علم نداری حالا ما تو خواهیم دوستیم حالا اصلا کمی علمون چرا شما خصومت میکنی در مسائلی که اصلا نسبت به مسائل علم نداری شما بهتر میدانی یا خدا والله یا علم الله طالمی اعتقاد و مذهب انبیاء را و اعتقاد و مذهب ادر انبیاء ابراهیم را و انتم لا تعلمون و شما نمیدانی چرا خلاف دارید در چیزی که اصلا علم ندارید اصلی علم نداری اختلاف ایچی اللہ تعالی میدانت ابراہیم دارا ایچی بینی بودو آئینی شماکن میدانی برایت ابراہیم از سرک سلاسا ان حرم سے مخاطب مستقیم قرآن یهود نتارا و مردم عرب کی تعبیر از مشرکین میشه. این ها خود را به ابراہیم ارگتر میدانش پر هم از مشر النسب ابراهیم بودند. نسبان هم سید بودن ادعای مذهب ابراهیم را هست داشتند. ثعیت مذهب. نسبان هم ابراهیمی بودند. مذهبان هم ابراهیمی. ادعای مذهب ابراهیم را دارند. شرع یهود و نصارا از نسل حضرت یعقوب و اسحاق بنی اسرائیل ابن ابراهیم و قریش را از نسل اسماعیل ابن ابراهیم خلیل الله است هر ستا مخاطب قرآن و مخاطب پیغمبر مدعی بتقद्दس ابراهیم هم نسبن خود را ابراهیمی میدانند وَحَمَّ دَبَلْ خُدْرِ اِبْرَاهِيمِمِ نِذَانِ تَن هر یکی می گو مان ابراهیم انا مان ابراهیم انا مان ابراهیم اللہ تعالیٰ گو مباریم انا نا ابراہیم یهودی بوده نا نسرانی بوده نا مشرکی بوده بی ایمان انا خمیشمہ شیط گو افاظمه دا ابراهیم یک مکان ابراهیم یهودیاں ولا نسرانیاں نبود ابراہیم در زندگی این یهودی آئے خصیص نظرہ آئے او زیر می خورن ای, ای مثل لا شکورا ابراہیم نبود دی لا شکورا نشالتا مثل شاہین حابر ہے لا شکوری سر کابرہانے جاتی لا شکوری می کنن نبود ابراہیم یهودی نصرانی ولكن کانه‌هایی فم مسلمان بوده ابراهیم مایل است سماه مادیان هنی پرمانه کردینجا مایل نن لدیان ال باطله و حمتن بود حمتن موهده بود یعنی ما اہل الا بیان الباتلا مسلم ارتپا در برابر فرمان خدا تسلیم تسلیم یعنی موقیت یا خدا را فقط میخواند عبادت می کرد و ما کان من المشرکین ابراهیم مگه شرک کنندگان مکه هم نبود بود شرک می کنه چه دادو شات مجا سمرا مالک کو کنه تو نیا اسم می کنه تو می کنه و ابراهیم همین بود اون خود بو سکان بود خودش مدمل شد ما کان من المشرکین ایت خدا نامران خوب oh, ابراهیم یهودی بوده نا نسترانی بوده نا شرک کننده بوده از این شرک کنندگان عرب ابراهیم چی بوده خوب ابراهیم چی اعلان کرده یک یہ کہتے صبر او یاران رسول الله رقیه میگنه یہ کہتے شوند ها در صحابه و صحابه در دمان صحابه شیعه شنی به نام مذهبی بود دینی که رسول پاک صلی الله تعالی دین اسلام. حرم دینا ولن نه تی ابراهیم چی بوده؟ الله تعالی میگه نزدیکترین انسان به ابراهیم باعین ابراهیم بمت در زمان ابراهیم و هادا نبی و این فجعمر و الله به نام او و آنکی ما با این پیغمبر ابو بکر ابراهیمی است، علی ابراهیمی است، حسن ابراهیمی است. حسین ابراهیمی از تلها زبر ابراهیمیان از و الذین آمنون انسان ها آب به ابراهیمن و ما اللہ انترون شما میسید سروران گرامی امروز مردم فقط به نسبت ها ما ابراهیمی ما عمری ما کتیغی ما فاروقی بابا گویا از بی رحم در توست گویا خارو رحم در توست فقط ا دی نسبت ها رقم نسبت نسبت ابراهیم نسبت خدا نسبت خدا الله تعالی میگه نسبت‌ها درد نمی خورن نسبت اون که با خدا داشته داشته سبحان الله انشاء الله تعالی الله و علی المومنین الله تعالی میگه این نسبت را درد شما را دوا نمی کنه نسبت همه نسبت خوبه که با خدا باشد و خدا نسبتش با مومنینه خدا نسبتش با کیه؟ با مومنینه و الله و علی المومنین یکی میگه من با فلان پیر نسبت دارم یکی میگه من با فلان بزرد نسبت دارا اللہ تعالی میگی نسبت های ذهنی درد نہیں خورا نسبت اونے که شما ایمان داشت دا باشی اللہ ولی و مومنی دا. ابراہیمی باشی خود ابراہیمی بگی نگی لیکن اگر مؤمنی تو اللہ ولی و المومن حضرت جاج ربی رحمه اللہ شیخ خودش حماد اللہ حال جوی رحمه اللہ رحمت الواقطہ مغنی میکردین جا بنده یار کردم شکردم تعلق ما الله کا ان مغنی ان تعلق الخلق متغتو تعلق با خدا کافی ها مغنیه تعلق مخلوقا تعلق مخلوقات چنی خواهم لکنن وقتی تعلق شما با خدا میر شما با خدا نسبتی نداری شما با خدا اشنایی نداری نثبت مخلوق که دردی را دوامی کنن وجه اختلاف چرا یهود و نصارا با وجود علم با وجود علوم آسمانی با موجودگی تورات و انجید چرا اینها دارا حصومت می کنند با پیغمبر خدا اللہ تعالیم میگه در حقیقت اینها را این مرضی توفری و شرکی که دارند میخوان این توفر و شرک را بر این امت ها علت اصلی اختلاف نادانستن و ناپهمیدن نیست در حقیقت می خواهند اون باطلی که آخوندها در طول تاریخ آخوندها یهود و نصارا دروس کردن و به خور مردم دادن ایمون می خواهند این پیغمبر و صحابه این پیغمبر تحمیل کنن این همه قصوبه چیه ایچیه ودد طائفت من اهل الكتاب لا يظلونکم لو مستریه جمله را به معنی مستر میکنه مانا میکنه دوست داردی که دی از احل کتاب گمراه کردن شماره عرضی گمراهی شماره داران میتوان مثل خودشان که گمراهند و بیر راحت شمار هم گمراهودیه کاریش لیکن اطور خاندن ما یو دلون الا انفسهم انها گمراہ نمی کنن در حقیقت بینات مگر خیش را در نتیجه اضلال مبتلا می گردن وما یشعرون لیکن شعور حماقت خود را ندارا بیشعورا انها فکر می کنن تربیت یافت نبوات گولین آرمی خورات نبی از انها قریب می سبحان اللہ اینا فکر می که طالی قرآنت این آخری می کنند، این ها شعور ندارند، این ها کاملند نتیجه ازلال به خدا نها برمی گردد، این ها ردحن می کند، یا اهل الكتاب، ملامت بر غلام، ملامت بر ازلال، این ها بخصوه اختلاف می کند پیغمبر، بین خاطر که شما را گم را کنان شحابه شما را گم را بین حفظو ایک بیغمبر من قل قل قل یا احنا الکتاب آل او احل کتاب او احنا زیر بغل کتاب لما تکفرون بی آیات اللہ مولانا خاطر دیشت شما کی گردی خاطر دیشت فقہای مولا ہم قافل نشے یا علم کتو ہے قرآنی بارا دومی و میران بھی جا. در لِمَنْ دَتْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَاَنْ فُن تَشْهَدُونَ شبهتا مکرار می کنید حقانیت آیات آیا در تورا تنویشتی پرغمبر آخر الزمان دارا ای دو قبله هست در انجیل نوشته همه انبیات آهدید آدن که در آخر الزمان نبی با اطمت و شان بی آیات که الان آیات تورات و انجیل را نادید من دیلید حشت میگه ها همون نبی که در تورات انجیل مسیحاش دیدی همون نبیه است. نرید و نستارای نجرا ملاعله و مباعله با نبی نکنید همون نبی که در تورات نمیشه. این همه دلایل در ماده صحابه هستن. الله تعالی صفات صحابه را ذکر میکند. تمام سبب در سیدیک اکبر یاف میشه. أصبحتون الأولون من المهاجرين والأنصار بعضهم يقولون أنه يحسن جديد لأشياء والصالم خجأتها تفرده هو تطريب كنك وأنه يحسن أجراء لكن في شيء يهودية لا ترده مشورة خاطر الله تعالى نقول لما تكرون في الله ایا تی الهی می خواند و علمدار فرمانبری که بل فری شما مرشدی شما و آغای شما بیر سال میره دیگر این سالی میں نہیں لے وہ شما شاگرد گیری تو کی شدید پای پای درسته پیغمبر سبب این مرید عشق حالات کتان مختلف بودیم و مرشد بودیم و جهان دست پای ورا بوسیده حالات برین جلوی پیغمبر به عنوان و بیمان را آیات الهی رس را امکار میتونی لیمت تک کرو نبی آیات اللہ و انتم تشهدو خون شما گواهی میدی بکین نبی برحق یا حلال کتاب وقت امی آمدن پیش پیغمبر تکیه حیل باطی می کردن حق و باطلہ حق این مراز بر اضلال بر اگمراح کردن این حال اتباه می یا الالکتاب لما تلبسون لحق بالباطل او اهل کتاب چرا مخلوط میکنی در محضر جوحال حق را و چرا کتمان میکنی در حق را در محضر خانندگان و انتم تالمون خودش ما می که ما اینزا دارین خلبیش می دار خودش ما دارین کتمان میکنی خبرات را باطل, حد حد باطل باطل می کونی حق حق در داد کو باطل باطل و باطل را مخلوق می و مطرح می و روزنی خانی و برقل حق در دنیا شما مینان نهاد عدم جوازه لبس و کتمان را هم می داند که حق را باباطل مخلوط کردن و مطرح کردن یا حق را کتمان کردن خورا انجیل چقدر وید گفتن برای آنهایی که کتمان حقایق می کنند حق را مخبی می کتمان می یا حق را باباطل مخلوط می کنند و مطرح می کنند آیات سریع الهیان با نصور سے که خدا میگه مرد و منو بخانی. من خدا آیات فریه نیستن. لیکن میگه بابا وقتو الی المسیلا وقتو الی المسیلا. اینا خب جنا وقت توی له الوسیله مانه اینه که امیدار فریاد میزنه علیا را و آنها را تجلیل کن برانهان نظر بده و موت حیات آنها را کن این چیه وقت توی له الوسیله مانه شمینه؟ امیدار بیکان علیا را بیکان عیام موت تجلیل کن این مانه وقت توی له الوسیله. اینها چی و جواب قال رَبُّكُمُ دُونِی اَجْتَجِبُ لَكُمُ این آیات وقت بویلیه الوسیلہ وقت همینه خدا کی پیغمبر اسلام فرمود روایات صحیح که شما امت من مو مو از یهود بچی یهودی ها کردن شما می کنید آنها لفظ کردن در این امت آنها لفظ را می کنید شکر باباطن مخلوط ها. مطرح می کنید همه می گو عبادت حق خدا هست عبادت حق خدا هست ترست حق خدا هست خب ازید من عبادت حق خدا هست چیه بگو یکی نمیگه یکم اللہ خوندی نمی کہ عبادت کے اقتصادی خدا اچھی ہے اینا نمی کر اینا من عبادت خدا ہے شما دنیا کہ بلن ان عبادت کے خدا اقتصادی بگی برای سجده عبادت حد یا نا خوبا و قابران اچھنے سجدنی عبادت و حق خانه کعباز محل تواف را لا طلب و هر قبر ولی را و هر قبر نبی را توافی کن تواف سجده رکوب ااا بفایده 100 متر به حال رو تو اونجا که به کار می‌رسه بیاد این چی؟ اینه کی گفته؟ این اگه هزینه وادت تو همی خدا استاد برای خدا به زمین با این بیار این تلبیس حق بالباطر همینه میدن لیم تلبیسون الحق بالباطر و تتمون الحق و انتون قالمون شبان میدانی جلوی حاضی ها دوستان سفر, سفر میکنمی دوستان این چیه این چیه این کارلت پیغمبر شما کرد. قرآن شما دستور داده حیمد شما دستور دادن چی داده اینه برمال بگن این چیه ای مهمنی و مهمنی مگر همین خون کثیف و نجیب دم مطوا تو به هدی خون میدی. حالا صرف فایش. یه دست فایش میکشی خونه عین نجیب بر لباس هایی پاک تومیزه. این کار پیغمبر کرده کرده پیغمبر دستور داده. وقتی پیغمبر از حج عمره و غذابات بر می امت در جلال پیغمبر گاو و گوستان دو شده و بی و وقتی حضرت علی از حج عمره بر میگشت حسنه برش میگشتن حضرت علی میگشتن چیه این؟ چیه ای شما درست کردی مهمانی و با با در مهمانی گوشت مقصوده یا خون مقصوده اینه برای من میگید در مهمانی مقصود چیه شما برای مهمان پر بکشید و موقع شام و نهار بازن جانید و بری بیدید و مهمان آیا شما مهمان را اکرام کردید؟ اکرام مهمان در مهمانی مقصود گوشت چه چی گوشت بند را جلوه بکشید وقت مهمان آمد قبر دردود اگر شما میخواید مهمانی دیدید ظایرین را و فیارت خنندگان این جایی حرم شریف را تو پس تو پس در کسب خانه تو پس در خانه تو پس تامادت بود فلو بی پس با تو بر بده تظاهر مار بود تو اول نیم بری خدا حساب کردی خدا گفت جان حیوان را برای من فیدا کن بنام من بگو بسم الله الله اکبر جان و روح مال من این برای من فیدا کن نگفت خدا یعنی نعوذ باللہ این عادی شده خدا باید براش خوربانی می کشی چلا اتماحا این تلبیت حق بلواطره تا بیگی نگه مهمانی او مهمانی گوش ببرده در مهمانی خود می دی نا همون که میگم بده گشت آماده شده شد و روز شد هم این ظاهر خانه کابره گشت بده کی این کار نکرده خدا خدا نہ گفتے پیغمبر نہ کر دے صحابہ نہ کر دن ائمہ نہ کر دن کار باطل ہے کار باطل ہے ما اتکم الرسول فخذوا وما ان حكم من هو فانتو <تصفيق> قال الطائفة من علي كتابا منو بالذي أنزلنا الذين آمنوا وجه النار خذ خب إن كان الدينا كتابا هما اترفند هاي ماو هما اتاء هاي مارا ببعد جات في قبر قرآن هملا ببعد وہ تقوی کو پرمرام زل ہے شاہد کہ لمہ قرون بے آیات اللہ وہ ایک مولا ہے ای ربیہ لمہ قرون بے آیات اللہ وہ مولا چھرا کھوپنے کو نہیں آیات خدا یا کتاب آیات نظام آیات گردن آ آب بابا میں تا کر دمحو اپنا نو بھی وے حب احباب ہو جائی کی درجا میں مولا یہودیہ نترانی مگو محبوب خدا ہوں غیر از من تو خدا نہیں رہتی یا میں سچ کو تاب خدا بھی رہتی اللہ تعالی کی گلی میں تکور نبی آیات اللہ وانتم تشهدو لما تلگسون الحق قبل باطل و تکمون الحق وانتم تالمون خالا دیدن که از این کانال جائدیه نرد دیدن حالا شروع کردن شاگردان خود را بوکتن کچھ کنی بلید روز این پیغمبر و این همه ارتش و این همه سرپروشان در مقابل ما حالا میخوان کاری بکنن که شاگردان پیغمبر را متفرق کنند. شاگردان پیغمبر را متفرق کنن این اده سرپروش که در محضر پیغمبر آمده اینها را متفرق کنن و میدنی چکار کنید اول روز میرید ازهار ایمان می نشینید و درسی و سبکی از قرآن می گیرید و بگید که ما این چطور خان کلاسی که پر از تشکیل تشكیل داده، اولمای رفتن در این کلاس، دانشمندان، تورات، انجیل رفتن، خیری ندیدند. پس دیشب آدمی گفت: "خان، واقعاً چیزی نبود؟" اگر این اولمای تحت تأثیر قرار می‌گرفتند. این دانشمندان، تورات، انجیل تحت تأثیر قرار می‌گرفتند. حتماً اونجا یک درسیک باقی نبود. این ها رب دن نزید تشخیص دان خواب می گلتن که این ها نزید نمیده حالان که رب دن نزید دیگر انهایی که نخانا انهایی که بیئلما انهایی که بیچاره سوادی چیزی نداره و الان در مغازه پیغمبر آشکب شدن این هم متزلزل نیستم. بله، اگر این خط پیغمبر خط درستی می بود این مکتبه محمد مکتبه سهیم بود این اولامار تحت تأثیر نیدا. اولامار رفتن در کلاس دردش تکذب دنم کردن نشستم، لیکن نتیجه شری ندیدم برگشتند. از این کانال اون شاعر دعاهی بی سواد و بی علم هم متعدد و شکات میکه که هم پیغمبری نبود. اولامار تشویش معلومه دو نما اعتماد نداره به هر کسی هر که اعتماد داره تا حد امکان هر قاش توڑی می کنه چه مقصد حضرت این بوده مقصد استاد این بوده وقتی می کنه کی خاطر الله تعالی خبر که پیغمبر را قال الطائفه من اهل الكتاب کو کے تدبیر ازلال <سلام> مومنین انکشاف ترطمان به علماء اهل کتاب را قرآن قرآن داردن گفت یک دستهی از اهل کتاب درون فرقون های بزرگ شون اون مراجع بزرگ شون گفت آمنون بالذی اون بلألالذین آمنون غید امان بیارید باون کتابی که نازل کرده شده بواسته پیغمبر بر اون انسان های کی ایمان آوردن تاک ان نکته استاد راید تاک غیر متعصف شدنه شما ظاهر شد ودهن نهار ابتدائی روز ابتدائی روز اول روز و ا ق ر و ا خ ر ه و اخر الزمن کار قنی اخر کشد ماخری نه دیدم درس خلاص محمد باش در مسجد النبی هیچ شهری هیچ للایتی هیچ خدا این این پیغمبر کی این قد خوب متقی خدا پرست کہ ماش هیچ چیز دی نہ دی خو انکار کرا ناز لا اللهم يار جون تا انشاگر دهاي بیست وات از ما که هجرت کرده و آمده از دور به این پیغمبر برگردان یا این انشاری که صحبت پیغمبر نال شده از بار این ترفند برگردان این امیجینی که الان با پیغمبر همراه این هست خلاص شدند هم متفرق شو پیغمبر تنها بماند. او دوستی هم کردن که لا تومینو مولوی صاحبان ترکیب آیا را اگر ندانی ماناش هم برای سوام مشکل میشه ایلا من تبع دین دینکوم این مختصنح چیه؟ ایوتا احدون مثل ما اوتیتم او یحا دیو او یحا دوبم اند ربی کم این دو جملا معتوف و معتوف علینا آسان مستثنان من ہو چه آسان مستثنان من ہو ترکیب همینه که من برای شما دارم ارض می کنم لا تومنون مانا نکنم لا تقرون ایتی جو زدارم نوشته لا تقرون حالا من توسکی اکرد دی دی؟ حرجیت نکنی و تشدید نکنی و اقرار نکنی که کسی دیگر داده شده است نشان که بیشمار داده شده و و بعدیمیگویم خوب اگر ما ایمان نداریم پرده قیامت ما رفیق خدا ملامت میکنه اینها. و بتا کرنے باور ہم نہ کوئی ٹھیک ٹھیس بار بزم مخالفت نہ رب شما این دو مطلب را از هیچ کسی قبول نہ مگر ان که پیرو دین شما هستند یعنی ما ما مارا چه لا تومنو از تصنیم قبل تصدیق نکنید این مطلب را کی دادے شودے کھیکی مثل آنکه شما دادش اید یا اینکه مخصومت می آنها با شما روز قیامت نظر رب شما شما این مطلب را تحسیف نکنید اللہ لمن طبیع دینکن مگر کسی را که پیرو دین شما پیرو دین شما یعنی ما مرادی طریق مدر کسی را تو قیروی کنشوا لا تصدقو تو لا تومنم مانع لا تصدقو ایوتا احد مثل ما بوتیتون این باور نکنی، اقرار نکنی که داده شده کسی مثل شما داده شده یا این هم تصدق نکنی که خصومت می کنن روز قیامت با شما ند رب شما اِلَّا لِمَنْ تَبِعَدِينَكُمْ مگر کسی کی پیروی دین اون بگو جواب اول اعزی قول یهود اللہ تومنو هدایت هدایت خدا هدایت در خداوند از این تدبیر چیفی بی شما نمی آیا. هدایت کہ خدا بکند اون هدایت اللہ کا صحابہ رسول اللہ را صلی اللہ تعالی ہدایت کر دے عظیم تدبیر شما چیزی به نمی آیا او بیبو پیغمبر ان الفضل بيد الله ف ف بے قبضہ قدرت اللہ کے فضلی بھی جتہ بہت واضح ہے یوت ہی من ان ايت بيكونون اون فذرا والله هو واسع الله واسع القدرات واسع العلمات ما باردایو کمینس وسیع العلیم خجابة بچدار بهتی کتی مناسبات قوت القدرات واسع العلمات چه بو و به کجا و چه مقامی مناسبات خلاصه از یخت است و بررحمتیی خدا اتصال می دهد بررحمت خاص نبواتش من یشاد حرکت را خدا بقاط از هیچ یهودی اعلامی و چه و از یک مرجت تقلید نثارا خدا مشوره نمی گیرد اتصال می دهد بررحمت خداش بررحمت خاص کنبوات حرکت را خدا بقاط والله ذو الفضل العظيم الله صاحب فضل عظيم هاش وصاحب فضل بزرگ هاش خلها تزول فضلها بخايد كسبية نبوت يك فضل وحبية كسبية اين الكسف و ازدرخاص و التمنى و ازتلاب نبوت هيرناني آية نبوت يك فضل ديشه الهياش بدون مشورتی هیچ کسی به حرکت نمیخواد بیاد الله تعالی فرزل حکیم استون فرای تقسیم خی کلم می بخاید تناقض کنی الهی مرا هدایت می خاید تناقض کنی هدایت را خوب این صرفان را قرآن رد کرد باقی یک مسئله دیگه که آنها طبیعی شو خیار با خیانت ادی شده باخر داوان الحمدلله